اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون براستی مؤمنان رستگار شدند الذينهم في صلاتهم خاشعون همان کسانی که در نمازشان خاشع هستند والذينهم عن اللغو معرضون و کسانی که از لغو رویگردانند والذينهم للزكاه فاعلون و کسانی که زکات را انجام میدهند و الذين لهم لفروجهم حافظون و آنها که شرمگاهشان را حفظ می کنند. الا علی ازواجهم او ما ملکات ايمانهم فانهم غیر جز بر همسرانشان یا بر کنیزانشان پس بیگمان اینان ملامت نمیشوند. شوند فمن هم پس کسی که فراتر از این بخواهد آنانند که تجاوز گرند. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَكَسَانِی که امانتهایشان و عهد خود را رعایت می وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ وَكَسَانِی که بر نمازهایشان موازبت می نمایند. اولئک هم الوارثون آری اینانند که وارثند الَّذِينَ الفردوس هم فیها خالدون کسانی که فردوس را ارث میبرند و جاودانه در آن خواهند ماند وَلَقَدْ خَلَقْنَا خلقنا مِنْ من مِنْ من طین و براستی انسان را از چکیده از گل آفریدیم ثم جعلناه نطفتا فی قرار مكیم. سپس او را از نطفه در قرارگاهی او استوار قرار دادیم ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مضغتا فخلقنا المضغت عظاما فخلقنا, عظاما فخلقنا عظاما فكسون العظام لحما ثم اما انشائناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين سپس نطفه را به صورت علقه گرداندیم آنگاه علقه را به صورت مزقه در آوردیم آنگاه مزقه را به صورت استخوان هایی گردانیدین پس بر استخوان ها گوشت پوشاندین سپس آن را آفرینشی دیگر بخشیدیم پس بزرگوار است خدایی که بهترین آفرینندگان است ثم اینکم بعد ذالک لمیتون سپس مسلمان شما بعد از این خواهید مرد ثم اینکم یوم آنگاه یقینا شما روز قیامت برانگیخته میشوید و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. و به راستی بر فرازتان هفت آسمان آفریدیم و ما هرگز از آفرینش خود غافل نبودیم و آذلنا من السماه باقدری فاسكنناه في الأرض و على ذهابِن به لقادیون. و از آسمان آبی به معین نازل کردیم. پس آن را در زمین جای دادیم. و ما بر از بین بردن آن کاملا قادر هستیم فان شاءنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره لكم فيها فواكه ومنها تأكلون پس به وسیله آن باقهای از درختان خرما و انگور برای شما پدید آوردیم شما را در آن باقها میبه بسیار است و از آن میخورید و شجرتا تخرج من طور سیناء بطب بالدهن و صبغ و نیز درختی را که از تور سینا بیرون می آید که از آن روغن و نانخورش خورش برای خورندگان فراهم می شود و این لکم فی الانعام لعبره نسقیكم مما في فی بطونها ولكم فيها منافع کثیرتون ومنها تأكلون و گمان برای شما در چهار پایان عبرتی است از آنچه در درونشان است شما را سیراب میکنیم و برای شما در آنها منافع فراوان است و از گوشت آنها میخورید وعلهولی و بر آنها و بر ها سوار میشوید وَلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بابرستی ما نوح را به سوی قمش پرستادیم پس او به آنها گفت ای قوم من الله را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست آیا پرهیز نمی کنید؟ فقال الملع الذین کفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين پس أشراف قومش آن كسانی كه كافر بودند گفتند این مرد جز بشری همچون شما نیست که میخواهد بر شما برتری جوید. اگر خدا میخواست همانا فرشتگانی را نازل می کرد. ما هرگز چون این چیزی را در میان نیاکان خود نشنیده ایم. این هو ایلا رجل به جنت فتربصو به حتی حیم. او مرد دیوانه ای بیش نیست پس تا مدتی در باری او صبر کنید قال رب انصرنی بی ما كذبون. نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تقضیب آنها یاری کن فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَانْفُسِخَ الْأَمْرُ وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ و اهلک الا من سبق علیه القول منهم ولا لا تخاطبنی فی الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مغرقون. پس به او وحی کردیم که به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز پس هنگامی که فرمان ما فرار و آب از تنور بجوشد آنگاه از هر نوع حیوان یک جفت نر و ماده در کشتی سوار کن و نیز خانواده خود را سوار کن جز کسی از آنان را که وعده حلاک از پیش بر او مقرر شده است و در کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند فَإِذَا فا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هنگامی که تو و همراهانت بر کشتی سوار شدید بگو ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات داد وقر ربی أَنزِلْنِي منزلا مباركا وأنت خَيْرُ المنزلین و نیز بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پربرکت بركت فرود آور و تو بهترین فرود آورندگانی ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ بی در این ماجرا نشانه هایی است و ما به راستی آزمایش می کنیم ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ سپس قوم دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم فأرسلنا فیهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون پس از خودشان پیامبری در میان آنان فرستادیم که خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست آیا پرخیز نمی‌کنید؟ و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون یاکلو مما تاکلون منه و گروهی از اشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را تقزیب می میکردند و در زندگی دنیا به آنها نعمت و آسایش داده بودیم گفتند این مرد بشری همچون شماست از آنچه که شما میخورید می خورد و از آنچه که شما مینوشید مینوشد و الا بشرا مثلكم انكم اذا الخاسرون و اگر از بشری همچون خود اطاعت کردید یقینا شما زیانکار خواهید شد انكم اذا و ترابا و انكم آیا او به شما وعده میدهد دهد که همانا شما چون مردید و خاک و استخانهایی پوسیده شدید بار دیگر از گور بیرون آبرده می شوید هیهات هیهات لی ما توعدون هی, هات، هی هات، آنچه به شما بعد داده می شود این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. جز زندگی دنیاوی ما چیزی نیست میمیریم و زنده می شویم و هرگز برانگیخته نخواهیم شد ان هو إلا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین او جز مردی نیست كه بر خدا دروغ بسته است و ما به او ایمان نمیآوریم قال ربی انصرنی بما كذبون انبرشان گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن قال عما خداوند فرمود به زودی پشیمان خواهند شد وا اخذت بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين پس سیه آنها را به حق فرو گرفت آنگاه آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم پس قوم ستمکار از رحمت خدا دور و نابود باد ثم انشعنا من بعدهم قرون آخرین سپس اقوام دیگری را بعد از آنها پدید آوردیم. ما تسبق من امت اجلها وما ما يستأخرون هیچ امتی نه از اجل خود پیشی میگیرد و نه تاخیر میکند ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امت رسولها کذبوه فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِیثِ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ سپس پیانبران خود را پیاپی فرستادیم هرگاه پیامبری برای هدایت امتی میآمد او را تکذیب می کردند. پس ما نیز آنان را یکی پس از دیگری هلاک کردیم و مایه عبرت آیندگان قرار دادیم پس نابود باد قومی که ایمان نمی آورند ثم ارسلنا موسی واخاه هارون بایاتنا وسلطان مبین سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلایل آشکار فرستادیم إى فعون به سوی فرعون و اشراف قوم او ولی آنان تکبر کردند و مردمی گردند کش بودند فقالوا أنؤمن ل مثلنا و لنا عابدون و گفتند: آیا به دو انسان مانند خود ایمان بیاوریم در حالی که قومشان بردگان ما هستند؟ من پس آنان آن دو پیامبر را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند و لقد آتینا موسا الكتاب لعلهم يهتدون و به راستی به موسا کتاب تورات دادیم باشد که آنان هدایت شوند و جعلن بن مریم و امه و, آوینا هما الى قرار و, و پسر مریم و مادرش را نشانه ای از قدرت الله قرار دادیم و آنان را در مکانی بلند و هموار که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم یا ایها الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم ای پیام بران! از غذاهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید بی من به آنچ انجام می دهید آگاهم وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ و بیگمان این امت شما امتی واحد است و من پرورگار شما هستم پس از من پروا کنید فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زبرا كل حزب بما فرحون. اما آنان در میان خود در کار دینشان فرق فرقه و پراکنده شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارد خوشنوده است فذرهم في حتى حين. پس ای پیامبر آنان را تا مدتی در جهل و غفلتشان رها کن. انما به من مال و آیا گمان میکنند که مال و فرزندانی که به آنان میدهیم نسارع لهم فی الخیرات بل لا يشعرون برای این است که شتابان نیکی ها را به ایشان برسانیم نه هرگز چنین نیست بلکه آنان حقیقت را در نمیابند این الذی هم من بی گمان کسانی که از خوف پروردگارشان بیم ناکند وال الذي نهون بیاآيات رهم و کسانی که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند وال هم لا يشركون. و کسانی که به پروردگارشان شرک نمیآورند. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون و کسانی که در راه خدا آنچه را باید بدهند میدهند و با این حال دلهایشان بیمناک است که بیگمان آنان به سوی پروردگارشان باز میگردند اولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون آری، اینانند که در نیکی ها شتاب میکنند و در انجام آن از دیگران پیشی میگیرند و لا نکلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب این ینطق بالحق و هم لا یظلمون ما هیچکس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم من از دما است که به حق سخن میگوید و به آنها هیچ ستمی نمی شود بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکه دل‌های آنها از این کتاب در قفلت است و آنها جز این اعمال زشت دیگری نیز دارند که پیوسته آن را انجام میدهند. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ تا زمانی که متنعمان آنها را به عذاب گرفتار کنیم در این هنگام آنها ناله و فریاد سر میدهند لا تَجْأَرُونَ إِنَّكُمْ مِنْ لا به آنها گفته می شود امروز فریاد نکنید یقینا شما از سوی ما یاری نخواهید شد قد كانت آیاتی تتلا عليكم فكنتم على اعقابکم تنکسون به آیات من پیوسته بر شما خانده می شد. پس شما از حق اعراض می کردید و به عقب باز می گشتید سامران در حالی که در برابر آن تکبر می کردید و در مجالس شبانی خود به بدگویی می پرداختید افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي آباءهم الاولين آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکان نخستینشان نیامده است ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون یا اینکه پیامبرشان را نشناخته‌اند پس او را انکار میکنند ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون یا می او جنون دارد؟ چون این نیست بلکه او حق را برای آنها آورده است و بیشترشان از حق کراحت دارند ولو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. بل اتینا هم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون و اگر حق از حوصهای آنها پیروی کند آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه شوند بلکه ما برای آنها پند و اندرزشان آوردیم پس آنها از پندشان روی گردانند أم تسألهم خرجا فخراج ربك و وهو خیر الرازقين یا اینكه تو از آنها مزدی طلب میکنی پس پاداش پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقیم و یقینا تو آنها را به راه راست دعوت میکنی و ان لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط و بی گمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه راست منحرف هستند و رَحِمْنَاهُمْ رحمناهم مَا بِهِمْ ما بهم من فِي طُغْيَانِهِمْ فی طغیانهم یعمهون و اگر به آنها رحم کنیم و بلا و رنجی را که بدان گرفتارند از آنها برطرف سازیم در طغیان خود لجاجت و پافشاری می کنند و سرگردان می مانند. و لقد اخذناهم بالعذاب لِرَبِّهِمْ لربهم يَتَضَرَّعُونَ ما یتضرعون و به راستی ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند پس برای پروردگارشان فروتنی ننمودند و به درگاهش تزرع و زاری نکردند حتی اذا فتحنا علیهم بابا و عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون تا زمانی که دری از عذاب سخت به روی آنها گشودیم، آنگاه آنها در آن به کلی آمید گردند و هو الَّذِي السمع والأبصار ما و او کسی است که برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد چه اندک سپاس میگذارید وهو و هو الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ و او کسیست که شما را در زمین آفرید و پراکنده نمود و به سوی او گرد آورده میشوید و او یحیی است که و و له اختلاف لیل و افلا تعقلون و او کسی است که زنده می کند و می‌میراند و رفت و آمده شب و روز از آن اوست آیا نمی اندیشی؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون چون نکردند بلکه آنها نیز مثل آن چه پیشینیان گفته بودند گفتند قالوا ا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ا این گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم آیا دوباره برانگیخته می‌شویم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل این هذا إلا اساطير الأولين راستی این وعده به ما و نیاکان ما از قبل داده شده این چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست قل من الارض ومن فیها کنتم تعلمون ای پیامبر بگو اگر میدانید زمین و هر در آن است از آن کیست سایقولون لله قل افلا تذكرون بزودی خواهند گفت همه از آن خداست بگو آیا پند نمیگیرید گیرید قل من رب السماوات السبع و العرش العظیم بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفت و پروردگار عرش عظیم است خواهند گفت همه از آن الله است بگو آیا از خدا نمی ترسید قل من بیده ملکوت و هو ولا یجار علیه بگو اگر میدانید چه کسی فرمان روای همه موجودات در دست دارد و او پناه می دهد و کسی در برابر او پناه داده نمی شود سقولوننیلاقوللف گفت: از آن خداست: بگو پس چگونه جادو میشوید بل اتیناهم بالحق و اینهم لکاذبون چون این نیست بلکه حق را برای آنها آوردیم و بیگمان آنان دروغگو هستند مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ اله بِمَا خَلَقَ على بعضهم على <بعض> <سبحان الله عن ما يصفون> خداوند هرگز فرزندی برنگذیده است و هیچ معبود دیگری با او نیست اگر چنین بود، آنگاه هر معبودی آنچه را که آفریده بود می برد و مسلامان بعضی بر بعضی دیگر بر تری می جستند. خداوند و پاک است، از آنچه آنها توصیف می کنند. عالم الغیب دانای نهان و آشکار است. پس برتر است از آنچه شریک او می سازند قل ربی اما تریانی ما یو ای پیام بگو پروردگارا اگر آنچه را که به آنها وعده می شود به من نشان دهی ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین پروردگارا پس مرا در زمرهٔ قوم ستمگران قرار مده علی نعدهم لقادرون و یقینا ما تواناییم که آنچه را به آنها وعده میدهیم به تو نشان دهیم ادفع احسن نحن بدی را به روشی آن بهتر است دعفع کن ما به آنچه توصیف میكنند داناترین وقل رب اعوذ بك من همزات و بگو پروردگارا من از وسوسه های شیطان به تو پناه میبرم او اعوذ بک رب ان و پروردگارا از اینکه آنان نزد من حاضر شوند به تو پناه میبرم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون کافران پیوسته به راه و روش خود ادامه میدهند تا زمانی که مرگ یکی از آنها فرارسد گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا انها كلمه هو قائلها و میو با روز خون ایله باشد که در آنچه در دنیا ترک و کوتاهی کرده هم، کار شایسه انجام دهم هرگز چنین نیست بیگمان این سخنی است که او به زبان میگوید و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. و عضا نفی خااف سور فلا سبر بین می اوملیون ولایتسه پس هنگامی که در سور دمیده شود در آن روز هیچ گونه پیوند های خویشاوندی در میان آنها نخواهد بود و از حال یکدیگر نپرسند. فمن ثقلت هم المفلحون و کسانی که ترازوی اعمالشان سنگین شود پسانانند که رستگار هستند ومن خافافت ماز فَؤلاائكَّنا خاص و سهم في جهنم خالدون و کسانی که ترازوی اعمالشان سبک باشد پس آنها کسانی هستند که وجود خود را از دست داده و به خود زیان رسانده اند و در جهنم جاودانه خواهند ماند تلفح وجوه همون نار و هم فيها آتش چهرههایشان را میسوزاند و آنها در آن تورش روح هستند. الَم تَکُن آیاتی تُتلى عَلَیکُم فَکُنْتُم بِها تُکَذِّبُونَ به آنها گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمیشد؟ پس شما آنها را می کردید. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. در پاسخ گویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قومی گمراه بودیم ربنا اخرجنا منها این عدنا فإنا ظالمون پروردگارا ما را از این جهنم بیرون کن پس اگر به کف و نافرمانی بازگردین قتعا ستمکار خواهیم بود قال اخسأوا فیها ولا تكلمون. خداوند میفرماید در آن گم شوید و با من سخن مگوید اینهو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير بی بیگمان گروهی از بندگانم میگفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی فتخذتموهم سخريا حتى ان سمكم و كن تم منهم پس شما آنها را به مسخره می گرفتید تا یاد مرا فراموشتان کردند و شما به آنها می خندیدید اینی جزیتوم اليوم بما صبرو انهم هم الفا همانا من امروز آنها را به خاطر صبری که کرده اند پاداش دادم. قطعاً آنها کامیاب هستند. كم في الارض عدد سنين؟ خداوند میفرماید شمار چند سال در زمین درنگ کردید. قَالُوا لبثنا يوما اَوْ بعض يوم فَاسْأَلِ الْعَدِّينَ گویند یک روز یا قسمتی از یک روز درنگ کرده این پس از حساب گران بپرس قال الا بتم الا انكم تعلمون میفرماید آری اگر میدانستید شما جز مقدار اندکی در دنیا درنگ نکردید اف حسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون آیا گمان کردید که ما شما را بیهود آفریده ایم؟ و همانا شما به سوی ما باز نمیشوید؟ نمی فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمان روای حق است هیچ معبودی به حق جز او نیست؟ پروردگار عرش کریم است و من مع الله الهان آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يصلح الكافرون و هر کس که با خداوند معبود دیگری را بخواند مسلمان هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت جز این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود یقینا کافران رستگار نمیشوند شوند و قر رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین و ای پیام بر بگو پروردگارا ببخش و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. بسم الله الرحمن الرحیم سوره آنزلناها وفرضناها وآنزلنا فيها آیات بینا و انزلنا فیها آیات بینات لعلكم تذکرون این سوره است که آن را نازل کرده این و احکام آن واجب نموده این و در آن آیات روشنی نازل کرده این شاید شما پند گیرید الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا قَائِفَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ هر یک از زن و مرد زناکار را صد تا تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید نباید در اجرای احکام دین خدا نسبت به آن درعفت داشته باشید و باید گروهی از مؤمنان بر مجازاتشان حاضر باشند الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين مرد زناكار جزء بازن زناكار يا مشرك ازدواج نميكنند وزن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این امر بر مؤمنان حرام شده است. والذین يرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم اجلیدوهم ثمانین جلدتا و لا تقبلو لهم شهادتا ابدا و اولائی هم الفاسقون. و کسانی که زنان پاک دامن را به زنا متهم می کنند سپس چهار شاهد نمی آورند پس آنها را هشتا تا زیانه بزنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید و اینانند که فاسقند الا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحیم. مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و اعمال خود را اصلاح و جبران نمودند پس بی گمان خداوند آمرزنده مهربان است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 و کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خودشان گواهانی ندارند پس هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا سوگند یاد کنند که او از راستگویان است و ان لعنة الله علیه ان کان من و, و بار چنین گوید که لعنت خدا بر او باد، اگر از دروغ گویان باشد. و اداآء عنه العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. و از آن کیفر را دور می کند، به آنکه چهار بار خدا را شاهد بگیرد. و سوگند یاد کند که او از دروغ گویان است و ان غضب الله علیها این كان من الصادقین و بار پنجم بگوید که خشم خداوند بر او باد اگر شوهرش از راست گویان باشد ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند به پذیر حکیم است گرفتار عقوبت الهی می شدید این إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم مسلما کسانی که تهمت بزرگ در باری ام آیش آوردند گروهی از خود شما هستند گمان نکنید که این ماجرا برای شما بد است بلکه آن برای شما خیر است برای هر کدام از آنها سهمی از گناه است که مرتکب شده است و کسی از آنان که بخش بزرگی از آن تهمت را به عهده داشته است برای او عذاب عظیمی است. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا و وقالو وقالوا هذا إفكم مبين. چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید؟ مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند این تهمتی بزرگ و آشکار است لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكالمون چرا چهار شاهد بر آن نیاوردند پس چون گواهان را نیاوردند آنان در نزد خدا دروغ گویانند ولولا فضل الله عليكم و رحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم في ما فيه عذاب عظيم و اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت نبود قط در آنچه به آن پرداختید عذاب بزرگی به شما می رسید ایل تلقونهو بی السنتکم و تقولون بی افواهکم ما ليس لکم بهی علم وتقولون بيه علم و وهو عند الله عظيم زمانی که آن شایعه را از زبان یکدیگر میگرفتید و بادهان خود سخنی میگفتید که به آن علم و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک میپنداشتید در حالی که آن نزد خدا بسیار بزرگ است ولاولائذ سمعتومه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که آن سخن را بر زبان آوریم خداوند تو منزهی این بهتان بزرگی است الله ابدا <supplyhop> ان <śm> خداوند شما را اندرز می دهد که اگر مؤمن هستید هرگز به چنین کاری باز نگردید ویبین الله لكم الآيات والله عليم حكيم. و خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند. و خداوند دانای حکیم است. ان الذين يحبون تشيع في الذين لهم عذاب في الدنيا يعلم لا تعلمون کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مؤمنان شایع شود عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند میداند و شما نمیدانید ولولا فضل الله و و الله و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند رعوف و مهربان است عقوبت سختی شما را در بر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان و يتبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازك منكم من أحد أبدا مازك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزك من يشاء والله سميع علي ای کسانی که ایمان آوردید از گام های شیطان پیروی نکنید و هر کس که از گام های شیطان پیروی کند پس بیگمان او به فحشا و منکر فرمان میدهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی هرگز کسی از شما پاک نمی‌شد. ولیکن خداوند هر که را بخواهد پاک می‌کند و خدا شنوای داناست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 والله کسانی از میان شما که توانگر و دارای وسعت زندگی هستند نباید سوگند بخورند بر آنکه به خویششاوندان و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند آنها باید اف کنند و چشم بپوشند آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده مهربان است إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم بی گمان کسانی که زنان پاک دامن بی خبر مؤمن را متهم به زنا میسازند در دنیا و آخرت لعنت شدهاند و عذاب بزرگی برای آنهاست یوم تشهد وارجلهم بما كانوا يعملون. روزی که زبان‌هایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه چه می‌کردند بر علیه آنها گواهی می‌دهند یوم وفیهم الله دینهم الحق و یعلمون و يعلمون أن الله هو الحق المبین آن روز خداوند جزای واقعی آنها را به تمام میدهد و خواهند دانست که خداوند همان حق آشکار است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 لهم مغفرة ورزق كریم زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز برای زنان ناپاک هستند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند اینان از آنچه مردم دربارهشان میگویند مبرا و پاک هستند برای آنها آمرزش الهی و روزی ارزشمندی است. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسو و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای کسانی که ایمان آوردید. وارد خانه های جز خانه های خود نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید این برای شما بهتر است باشد که پند گیرید فَإِنْ لَمْ تَجِدُو فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ و این قیل لکم ارجعون فرجعونه و ازکا والله بما تعملون علیم پس اگر کسی در آن خانه نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید پس بازگردید که آن برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام میدهید داناست. لیس علیکم جناح أن تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. و بر شما گناهی نیست که وارد خانههایی غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی دارید و خداوند میداند آنچه را آشکار میسازید و آن را پنهان میکنید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکالهم ان الله خبیر بما یصنعون ای پیامبر به مردان مؤمن بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند. و شرمگاهشان را حفظ کنند این کار برای آنها پاکیزه تر است بی گمان خداوند به آنچه انجام میدهند آگاه است و قل للمؤمنات یعبودن من ابصارهن و خروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها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 او ابناء عولتهم او اخوانهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او نسائهن او ما ملكت ايمانهم او التابعين او التابعين غير اولي الاثبه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهم وتوبووا إلى الله جميع أيها المؤمنون لعلكم تفلحون و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فروگیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه از آن طبعا خودش نمایان است و باید اطراف مقنعه های خود را بر گریبانهایشان هایشان و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا مردان صفیح خدمتکاری که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که بر شرمگاه زنان آگاهی نیافتهاند و زنان نباید هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کرده اند دانسته شود و ای مؤمنان همگی به سوی خدا توبه کنید تا رستگار شوید و انکحوا ال ایاما منکم و من عبادكم و امائیکم این یکونوا فقراء یرنهم الله من فضله والله واسع علیم مردان و زنان مجرد و بی همسر خود را همسر دهید و نیز غلامان و کنیزانتان که شایسته و نیکوکار هستند اگر فقیر باشند خداوند از فضل خیش آنها را بینیاز میکند و خداوند گشایش دهنده آگاه است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 يا تكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن اللي عرض الحيات الدنيا ومين يكرهن فإن الله من بعد و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج نمی یابند باید پاک دامنی پیش کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بینیاز گرداند و کسانی از بردگانتان که خواستار مکاتبه هستند پس با آنها قرارداد داد ببندید اگر خیر و صلاح در آنها احساس می کنید و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنها بدهید و کنیزان خود را که میخواهند پاک دامنی کنند برای به دست آوردن متاع ناچیز زندگانی دنیا به زنا وادار نکنید و کسی که آنها را بر این کار مجبور کند پس بیگمان خداوند بعد از اجبار آنها برای آنان آمرزندی مهربان است وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ وَمَثَلَ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ما بر شما آیاتی نازل کردیم و از کسانی که پیش از شما گذشتند و اندرزی برای پرهیزگاران الله نور السماوات والأرض مثل نورهی كمشكات فیها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجت کأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء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 الله بكل شيء علیم الله نور آسمانها و زمین است مسل نور او همانند چراغ دانی است که در آن چراغی افروخته باشد که آن چراغ در میان شیشه ای است آن شیشه گویی ستاره ای درخشان است این چراغ با روغن درخت پربرکت زیتون افروخته شود. که نه شرقی است و نه غربی نزدیک است که روغنش بدون تماس با آتش شعله ور شود نوری است ابزون بر نور و خداوند هر کس را بخواهد به نور خود هدایت میکند و خداوند برای مردم مثلها می میزند و خداوند به هر چیزی آگاه است فی بیوت اذن الله أن ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها یسبح له فیها بالغدو والآصال این چراغ پرنور نور در خانهای است که خداوند اجازه داده است که بلند شود و نامش در آنها برده شود و صبح و شام در آنها تسبیح او گویند رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإیتاء الزكات یخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فیه القلوب والأبصار مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند. آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها دگرگون می شود الله احسن ما عمل و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب تا خداوند بهتر از آنچه انجام دادهاند به آنها پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش آنها بیفزاید و خداوند هر کس را که بخواهد بی حساب روزی میدهد والذین و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعتی احسبه الظمان يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا اذا يجده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله الله سریع الحساب و کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابانی که انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد. تا آنکه به آن نزدیک شود چیزی نمی یابد و خدا را نزد خود یابد که حساب او را کامل بدهد و خداوند زود شمار است. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور یا اعمالشان همچون تاریکی هایی در دریای پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری است و بر فراز آن ابری تاریک است تاریکی هایی است یکی بر فراز دیگری آنگونی که هرگاه دست خود را بیرون آورد ممکن نیست آن را ببیند و کسی را که خدا نوری برای او قرار نداده است پس هیچ نوری برای او نیست علم تر أن الله يسبح له من في السماوات والارض والطیر صافات كل قد علم صلاته و والله عليم بما یفعلون آیا ندیدی که همه آنان که در آسمانها و زمین هستند و پرندگان بال گسترده خدا را تسبیح میگویند خداوند نماز و تسبیح هر یک از آنها را میداند و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ المصير و آسمانها و زمین از آن خداست و بازگشت همه به سوی خداست أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يجعله ركاما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 فیصیب به من یشاء ويصرفه عن من یشاء یكاد ثنا برقه یذهب بالأبصار آیا ندیدی که خداوند عبرهایی را به آرامی میراند سپس بین آنها پیوند میدهد آنگاه آن را متراکم می کند پس قطره باران را می بینی که از میان آن بیرون می شود و از آسمان از کوه هایی که در آنجاست دانه های تگرگ نازل می کند پس آن را به هر کس که بخواهد میرساند و آن را از هر کس که بخواهد باز می دارد نزدیک است درخشندگی برق آن چشمها را ببرد يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لأولي الأبصار. خداوند الله شب و روز را دگرگون میسازد. بیگمان در این امر برای دیده وران عبرتی است وَاللَّهُ خلق كُلَّ دَابَّةٍ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 ان الله على كل ش قادی و خداوند هر جنبند ای را از آب آفرید پس برخی از آنها بر شکم خود راه میروند و برخی بر دو پا راه میروند و برخی از آنها بر چهار پا راه میروند خداوند هر هرچه را بخواهد می آفریند بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست. لقد أنزلنا آیات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم پرستی ما آیات روشنگری نازل کردیم. و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين و منافقان میگویند به خدا و به پیامبر او ایمان آوردیم و اطاعت کردیم سپس گروهی از آنها بعد از این ادعا رویگردان میشوند و اینان در حقیقت مؤمن نیستند و اذا دعوا الى الله ورسوله لیحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون و هنگامی که به سوی خدا و پیام برش فراخوانده شوند تا در میانشان داوری کنند ناگهان گروهی از آنها اعراز می کنند. و, این الحق إليه و اگر حق با آنها باشد گردن نهاده با سرعت به سوی او میآیند، افي قلوبهم مرض ام ارتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون آیا در دلهایشان هایشان بیماری است یا تردید و شک دارند یا میترسند خدا و پیامبرش بر آنها ستم کنند لا بلك آنها خودشان ستمگرند اینما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اي يقولون اي يقولون سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیام برش خوانده شوند تا میان آنها داوری کند فقط این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینان همان رستگارانند و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فأولئیک هم الفائزون و کسی که خدا و پیام برش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمان او بپرهیزد پس اینانند كه که کامیاب هستند و بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون قل لا تقسموا طاعتم معروفه ان الله منافقان با نهایت تأکید و سخت در این سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنها فرمان دهی برای جهاد بیرون میروند ای پیامبر به آنها بگو سوگند یاد نکنید طاعت پسندیده و خالصانه مطلوب است بیگمان خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. قل اطیع الله اطیع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل و علیکم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا و علی الرسول إلا البلاغ المبين. ای پیامبر بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید پس اگر سرپیچی کردید بر اوست آنچه که به آن مکلف شده است و بر شماست آنچه که بر شما تکلیف کرده اند و اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر اختی پیامبر چیزی جز ابلاغ آشکار نیست وعد الله الذین آمنوا منکم و الصالحات لیستخلفنهم فی الارض لیستخلفنهم فی استخلف الذین من قبلهم و وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که قطعاً آنها را در زمین جانشین خواهد کرد همان گونه که کسانی را که پیش از آنها بودند جانشین ساخت و دینشان را که برای آنها پسندیده است برای آنها استوار سازد و یقینا خوف و ترسشان را به آرامش و امنیت مبدل میکند تنها مرا پرستش میکنند و چیزی را با من شریک نمی سازند و کسانی که بعد از این کافر شوند اینانند که فاسقند و اقیم الصلاه و اتو الزکات و الرسول لعلكم ترحمون و نماز را برپا دارید از زکات را بدهید و پیامبر خدا را اطاعت کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير کسانی که کافر شدند می میتوانند ما را در زمین به سطوح آورند جایگاهشان آتش است و چه بد بازگشتگاهی است یا ای الذین الذين امنوا الذین الذين ملكت ايمانكم والذين لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 كذلك يبين الله لكم والله عليم حكيم. ای کسانی که ایمان آورده اید باید بردگان شما و کسانی از کودکان شما که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرند پیش از نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباسهایتان را بیرون می آورید و بعد از نماز اشار این سه وقت وقت عورت و خلوت برای شماست بعد از این سه وقت بر شما و بر آنها هیچ گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوند آنها بر اطراف و پیرامون شما در رفت و آمدند و بعضی بر بعضی دیگر وارد می شوید. اینگونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است و اذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیست اذنو کم است اذن الذین من قبلیم کذالک یبین الله لكم آياته. والله علیم حکیم به هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند باید اجازه بگیرند همانند کسانی که پیش از آنها بودند اجازه می گرفتند این گونه خداوند آیاتش را برای شما بیان میکند و خداوند دانای حکیم است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 و این یستعففن خیر لهم و الله سمیع علیم و زنان از کار افتاده ایک امید ازدواج ندارند برانها گناهی نیست که های خود را بگذارند در صورتی که زینت و زیبایی خود را آشکار نکنند و اگر خودداری کنند و خود را بپوشانند برای آنها بهتر است و شنوای وند شنواي داناست. لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاء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 كذلك يبين الله لكم لعلكم بر نابینا گناهی نیست و بر افراد لنگ گناهی نیست و بر بیمار نیز گناهی نیست و همچنین بر خود شما گناهی نیست در آنکه از خانه های خود یا خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا های عموهایتان یا خانه های یا خانه های یا خانه های یا خانههایی خانه که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان چیزی بخورید. بر شما گناهی نیست که دست جمعی یا جداگان غذا بخورید. پس هنگامی که به خانه ها وارد شدید، برخیشتن سلام کنید که تحیتی مبارک و پاکیز از سوی خداوند است اینگونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می کند باشد که شما خیرت ورزید اینما المؤمنون الذين آمنوا بالله و و اذا كانوا معه على امری سمع الذين لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَإِذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیام برش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار همگانی با او باشند به جایی نمیروند تا از او اجازه بگیرند بیگمان کسانی که از تو اجازه میگیرند آنها کسانی که به خدا و پیام برش ایمان آورده هند. پس اگر برای بعضی کارهای خود از تو اجازه بخواهند به هر کس از آنها که میخواهی اجازه بده و برایشان از خداوند آمرزش بخواه یقینا خداوند آمرزندی مهربان است.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 ان تصیبهم فتنت او یصیبهم عذاب علیم. صدا زدن پیام بر خدا را در میان خود همچون صدا زدن یکدیگر قرار ندهید یقینا خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان میشوند و یکی بعد از دیگری فرار می کنند می پس کسانی که با فرمان او مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه فتنه ای گریبان آنها را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد ان لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فینبئهم بما عملوا والله بكل شیء علیم آگاه باشید بیگمان آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و یقینا او آنچه را که شما بر آن هستید می داند و روزی که به سوی او باز میشوند می آنها را به آنچه انجام داده اند آگاه می سازد و خداوند به هر چیزی داناست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا پر برکت و بزرگوار است کسی که فرقان را بر اش نازل کرد تا بین دهنده جهانیان باشد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 همان کسی که فرمان آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود برنگزیده است و در فرمانروایی هیچ شریکی ندارد و همه چیز را آفرید پس اندازی هر چیز چنان که می معین کرده است الهه تا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشور و مشرکان به جای او معبودانی برای خود برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خود نیستند و نیز مالک مرگ و حیات و برانگیختن نیستند و قال كفروا این هذا و اعانه علیه قوم آخرون فقد جاءوا و کسانی که کافر شدند گفتند این قران جز دروغی نیست که خود بافته است و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند به راستی آنها ستم، و دروغ بزرگی مرتکب شدهاند و علیه و, و گفتند این همان افسانه‌های پیشینیان است که آن را رونویسی کرده و هر صبح و شام بر او املا می‌شود. قل ان... زله الذي يعلم السر السماوات پیامبر بگو کسی آن را نازل کرده که راز نهان آسمان ها و زمین را میداند بیگمان او آمرزنده مهربان است وقالوا ما لهذا الرسول يأكلوا الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إلیه ملك سيكون معه نذیرا و گفتند این پیام براچه شده است كه غذا میخورد و در بازارها راه میرود چرا ای بر او نازل نشده است پس همراه او بیم دهنده باشد او یلقا إلیه كنز أو تكون له جنة یأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا یا yeah, گنجی از آسمان بر او افکنده شود و یا باقی داشته باشد که از میوه های آن بخورد و ستمگران گفتند: شما فقط از مردی سهر شده پیروی می‌کنید. اوور کیف لك الامثال فضلوا, فضلوا بنگر چگونه برای تو مسسل زدند؟ پس گمراه شدند آن گونه نمی توانند راهی را بیابند تبارک الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات جنات من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا و بزرگوار است کسی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار میدهد دهد باغهایی که نهرها از زیر درختان آنجاری است و نیز براید کاغهایی قرار میدهد دهد بل کذبو بی ساعت و اعتدنا لی کذب بی الساعت سعیرا اینها همه بهانه است بلکه حقیقت این است که آنها قیامت را تقزیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تقزیب کند آتش سوزان جهنم فراهم کرده ایم اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا هنگامی که جهنم آنها را از مکانی دور ببیند از آن خشم و خروشی وحشتناک میشنوند و اذا القو منها مكانا ضيقا مقرنين ثبورا و هنگامی که دست و پا بسته در مکان تنگی از آن انداخته شوند در آنجا مرگ را به فریاد میخوانند لا تدعو اليوم ثبورا واحدا و ثبورا سبورا به آنها گفته شود امروز یک بار مرگ و نابودی را نخوانید و بلکه بسیار و بارها فریادش کنید قل اذالک خیر ام الخلد الخلدیلتی وعد المتقون كانت لهم و ای پیام بر بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده شده است بهشتی که پاداش آنها و بازگشتگاهشان است لهم فيها ما كان على ربک وعدم مسئولا هرچه چه بخواهند در آنجا برایشان است، جاودانه در آن خواهند ماند این وعده ایست بر احدی پروردگارد که تحقق آن را از او خواستند و یوم یحشرهم و ما یعبدون من فقول و روزی که همه آنها و آنچه که به جای خدامی پرستیدند گرد آورد حس می‌فرماید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کرده‌اند قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ولكن متعتهم و حتی نسوا ذکرا وكانوا قوما بورا گویند تو منظحی برای ما شایسته نبود که به جای تو دوستانی برگزینیم. ولی ولیکن آنها و پدرانشان را از نعمتها بهرمند نمودی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند با گروهی هلاك شدند فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا خداوند به آنها میفرماید به این معبودان شما را در آنچه میگویید تکذیب کردند پس اکنون نمی توانید عذاب را برطرف کنید و نه از کسی یاری بجویید و هر کس از شما که ستم کند عذاب بزرگی به او میچشانیم و ما ارسالنا قبل ک من المرسلین ایلا، اِنهم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأسواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. پیش از تو هیچ پیام بری را نفرستادیم مگر اینکه آنها هم قضا می‌خوردند و در بازار ها راه می‌رفتند و ما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار دادیم آیا صبر می‌کنید و پروردگار تو بیناست